بسم الله الرحمن الرحیم بنا می خداوند بخشنده مهربان طسین می طسین می تلک آیات الكتاب المبین اینها آیات کتاب مبین است نزل علیک من نبع موسی و فیلعون بالحق لقوم یؤمنون ما از داستان موسی و فرعون به حق برتم میخانیم برای روحی که ایمان بیا إِنَّ تِجْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا كِيَ عِنْ يَسْتَضْعِحُ خَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَلْمَاءَهُمْ وَيَسْتَحْدِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسِّدِينَ فرعون برطريجوه در سمين كارت وآهل أمراء گروه گروههای مختلف تقسیم نمود گروهی را به ضعف و ناتوانی میکشاند پسران آنها را سر میبرید و زنان آنها را برای کنیسی دندان نگاه میداشت او مسلما از مفصدان بود ونرید عَلَى على الذین استضعفو بالأرض ونجعلهم ائمتا ونجعلهم الواردين اراضي ما بر این قرار گرفتا است که بمستصافین نعمت بخشیم وان خارا پیش باوکان و بارسین روک زمین قرار دهیم وَأَمَّنْ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَرِزْقَ عَيْنٍ وَآمَنَ وَجُنُودُهُ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدُثُونَ حُكْمَتُ كَنْزَا صَبْر جَافَازِيم وَبَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ بَلَشْكَرِيَانِ آنْخَا آنْكَ رَابِين دَاشْتَنْ از اين إِلَى فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُبْسَلِينَ ماذا مادر موسی الهام کردیم که اوراشیه و هنگامی که بر او ترسیدی و ایذا در دریاوی نیل پیاخت و نتر وخمكين مباش كَمَا أورا بطباز مكتون وأورا أسر سلانش قرار ملكين فالدقطه آل في العون ليكون لهم عجل وو وحجنا إن في خاندان فرعون او او گرفته گرفتند تا فرنجام دشمن آنان و موقعی ان دوشان کردد مسلما فرعون و هامان یان آن دو خطا کار بودند و قالت مراقه فیعون قر و صعنی لا تقتلوه فئن تقیده هم ولدن و هم لایشعرون گاز او را نکشید نور چشم من و شماست شاوجد برای ما مفید باشد یا او را به سر خود برگوزید و آنها نمی فهمیدند و اصبح فؤاد امی موسی فارغا این که دفلت بی لولا او ربطنا علا قلبها لتکون من المؤمنین قلب مادر موسا از همه چیز جزیاد فتن دشتوهی کشت و اگر قلب او را با وسیل ایمان با امید محکم نکرده بودین نسید بود مطلب را افشا کنند باقالتلی اوگییننی بوسی فر بیندوننو به خواهر او گفت بس او را از دور معوجرا را مشاهده کرد در خااریک آنها خاا بودند خبر بودند وحرمنا عليه المرابعا قرل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يدخلونه لكم فقالت هل أذلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون ما حمزنا ونشير دهرا أسقع بالبقوة تحرين كرتي خوهرش گفت، آیا شما را به خانواده رهنمایی کنم که توانند این نوتاد را که قولت کنند و خیرخوافی او هستند؟ فرگرناه بلا امهی که تقرعی و لا تحزن وَلَا تَحْزَنَ وَلِ تَعْلَمَ وَعْدَ اللَّهِ حق ولكن لَا يعلمون. ما او را به مادرش باز کرتان دیم تا چشمش روشن شود و خمکی نباشد و بداند داند و حق است ولی اکثر آنها نمیدانند. و اونم مبلله و د و کامل شد حکمت پ با او و وقتی نیکو نکوکاران را جا میدهیم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 من إنه مضل او در موقعی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نظامش مشغولند یکی از پیروان او بود بعدیگری از دشمنانش آن یک از پیروان او بود از وی در برابر دشمنش تقاضای کمک کرد موسا مشت مخکمی بر سینه او زد و کار او را ساد این از عمل شیطان بود که او دشمن و گمراه کننده آشکار کار رب اینی ظلمت نفسی هو کرد پر من خشتن ستم کردند مرا ببخش خدا او را بخشی که او غفور و جهنم است قال کرد بما هر نعمتی که به من دادی من هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود فأصبح في المدينة قائفا يترقب فإذا الذي تنصره بالأمد يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين موسى شهر ترسان بود لحظة در انتصار خاضصي ناقا تيب ومن کسي كديروز از او جاري فریاد می بس او کمک می خواهد او گفت تو آشکارا انسان گمراهی هستی فلما ان اراد ان يبطش بالذی اوعدون لهما قال يا موسا افرید ان كما قتلت اَئِتُرِيدُ إِلَّا أَنْتَكُونَ جَبَرَةً الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ مِنَ خاص با کسی که دشمن هردوی آن در درگیر شود و با, با قدرت مانی او کرداد فریادش بلند شد: گفت ای موسا! میخویی مرا بکوشی و من گونه که روز انتان را بکار دست تو میخوای فقط جبار در روی زمین باشی و نمیخوای از مسلمان باشی؟ و جعل من آب و المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يكمنون بك قال يا موسى الملأ بك لك من در این هنگام مردی از نقطه دور دست شهر با سرعت آمد و به موسا گفت ای موسی این جمعیت برای کشتند با مشورت نشستند فورا از شهر خارج شو که من از خیر خواهان تو فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِثًا يَتَرَقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ موسى خارج شد در حول كتاب صنبو بحر لحظة در انتصار خارجي عسكار ترباح كار مرثين قوم صالين در بخش وَلَمَّا مَاتَ وَجَّهَتِ الْقَائِمِينَ قَالَ که متوجه جانب مغرب شد، گا امید امیدوارم پروردگارم مرا هدایت کند. وَلَمَّا ما وَرَدَ ما رَأَيْنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أمة مِنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ بَيْنَهُم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْتَيْحِثُ حَتَّىٰ تَسْتَخْرِجَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ گروهی از مردم را در آن دید که چهار پاگیان خود را سیراب می و در کنار آنها دو زن دید که مراقب گوزفندان خیشند و به چاه نزدیک نمی شدند. موسا با آنها گفت کار شما چیزی؟ چرا گوسفندان خود را آب نمی دید. گفتند ما آنها را آب نمیدهیم تا چوب ها همگی خارش شوند و پدر ما پیر مرد محسنی است. فسقا لهما ثم تولا ایلو آنها آب داد سفرسرو به سویی آورد و افت کرد پروردگار هر خیر و نیکی بر من فرستی من نیاز آن نیازمندم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجذيك أجر ما تقيت لما فلما جاءت و قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ناگهان یکی از آن دو به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برمیداشت و گفت پدرم از تو دعوت میکند تا مرز سیراب کردن گوسندان را برای ما به تو بپردازد انگامی که موسی نست او آمد و سرگذشت خود را شرح داد گفت نترس از قوم سالم نجات یافتی یکی از آن دو دختر گفت پدر او را استخدام کن چرا که بهترین کسی را که استخدام می توانی کنی آن کس است که قوی و امین باشد قال انی أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأذرني ثماني حجر فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك الله من گفت من میخواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی وگر آن تا ده سال افزایش دهی محبت یکی توست من نمیخواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم و انشاء الله مرا از صالحان خواهی قال ذلك بني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل این از قلب و قرار میان من و تو هر کدام این دو مدت سال تکمیل <تصفيق> کنم ملامتی بر من نیست و بران چی میگویم خدا کواس فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجَلَ وَسَارَدِ أَهْلِهِ أَنَّ سَبِينَ جَلَبِ الطُّورِ نَارَ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوُ إِنِّي أَنَا السُّنَعُ او من النار همگامی که موسی مدت خود را به پایان رسانید و همراه که اش حرکت کرد از جانب تور آتشی دید به خانواده گفت درن کنید من آتشی دیدم میروم رویم خبری برای شما بیافرم یا شعلی از آتش تا به آن گرم شدید فَلَمَّ أَتَاهُ مُوسَى مِنْ شَطِّ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَاعِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ يا مُوسَى أَيَّ يا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هنقومك بسرعة على تشا از صاحل راست باودی دران ترزمین بلند و پر برکت از میانی درخت نداد داده شد که ای موسی، منم خرابان پر بارکار جهانیان و ام الکعصات فلمع رأها تهتز که انها جان و لامد برم يا موسى اقبیل ولا تخف اینک من را عصایت که اصار افغاند نگاه کرد و دید همچون موری با سرعت فرکت نیکند ترسید و به عقب برگرشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد با او گفته شد برگرد و نترس تو در امان هستی. يسلك يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء وظمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئت إنهم كانوا قوما فاتفين دست روضر قريبون هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است و بدون عیب و نقص و دستهایت را بر سینه بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود این دو برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست که آنها قوم فاسقی هستند قال ربي إني قتلت منهم نبذا فأخاف أين يقتلون عاركار، ما باركار، من مني لسانا معي يصدقني. اینی اخاق این یکذبون و برادرم هارون زبا نشرت من پسیختر است اورا را هم را که من بفرست تا جا من باشد و مرا تصدیق کنند میترسم مرا تصدیق کنند قالت نشد عبدک اخیر اخیلک و نجعل لکما سلطانا فلا یقیلون ایلیکما بی آیاتنا انتما و من الغالبون فرمود بازوان زبانت را با وسیله برادرت محکم میکنیم و برای شما سلطه و برطری قرار میدهیم و ببرکت آگیات ما بر شما دفت نمیابند شما و پیروانتان پیروزید فلم نمجا هنگامی که موسی با معجزات روشن ما به سراغ آنها آمد گفتند این چیزی جز نیست که به دروغ به خدا بسته شدهد ما هرگز چنین چیزی در نیاکان خود نشنیدهایم وقال موسى رفی اعلم بمن جاء دل من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يصلح الظالمون موسى گفت پر من اصحاب کسانی که دا جسرا نفس او آبرت با کسانی که سرنجام انجام دنیا با آخرت از آن آنها آقا سراس مصدما زالما رستگار نخواهند شد وقال فرعون یا ایوها الملأ ما علیمت لكم من اله غیری فاوقد لي یا هامان ونقین فاجعلی صرحا فجعلی صرحا لعنی اطلع الى اله موسى و انی لأظنه من الكابدين فران گفت ای جمعیت درباریان من خداوی جز خودم برای شما فراق ندارم اما برای تحقیق بیشتر ای هامان آتش برگل بیفروز و آجرهای محکم بساد بترو من ورکه بلندی دی ده تا از خدای موسی خبر گیرم هرچند من گمان می کنم او از سرخ گویان است سرانجام تبره و لشکریانش فی الارض سرنجم سرعون استقبال کردند و پندا شتند سوی ما باز نمیکردند ما نیز او ولشكویانش را گرفتیم و به دریا افکندیم اکنون بنگر پایان کار سالمان چه شد و جعل ناهم ایمتين يدعون إلى النار و يوم القيامة لا ينصرون. بما و ما آنها که دغدغه با آتش دو زخمی کنند خراطه می‌کردیم و رود رستاخیز یا وینا شد. و ابدان ناهم في هذه الدنيا لعنه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوضِينَ دَرِّن دُنْيَا لَعَنَتْ قُشْتَ سرَ لَعْنَتْ نَصِيبَ الْخَالِدِينَ بِرُوزِ الْقِيَامَةِ أَسْهَ رُويَانَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا الْقُرُونَ الْأُولَى بصائر لعلهم ما به موسا کتاب آسمانی دادیم بعد آن که اقوام قرون نخستین را حلاک کردیم کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود و موجه هدایت و رحمت تا متذکر و وقتان بگیرند و ما کنت بجانب الغربی از و ما کنت من تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی دادی و تو این موجه نبودی ان ما اقدام را در اعصار مختلف خلق كتي اما الزمان خيتولوني برانها كفاش تو هرگز در میان مردم مدین اقامت نداشتی تا آجات ما را به دست آوریم و برای آنها بخواهیم ولی ما بودیم که تو را فرستادیم و این اخبار را در اختیارت قرار دادیم. و ولا س رحمتا من ربك لتنذر من ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يتذكرون تو در طرف تور نبودی زمانی که من ولی این رحمت اسوی پربرکا تو بود تا به وسیله آن قوم را انتظار کنی که قبل از تو هیچ انسول کوینده فراوی آنها نیامده است شاول جت متذکر گفتا و لئن تصيبهم مصيبه بما قدمت ايهيهم فيقولوا ربنا فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا إِلَيْنَا رسولا فَنَتَّبِعَ آياتك وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ما پیش از سر سادن آنها را به خاطر اعمالشان مجازات می کردیم می گفتند چرا رسول برای ما نفرستادی تا آقیات تا را پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم. اگر بخاطر این امر نبود مجازات آنها بجهت جهت اعمالشان نیاز به اتصال پیامبر هم نداشت فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى بما موسى من قبل قالوا سحران بكل هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند چرا مثل همان چیزی که به موسی داده شد به این پیانبر اعطا نگردیده است مگر بخواهنچو یاون همانند آنها معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد انکار نکردند و گفتند این دو یعنی موسی و هارون که دست به دست هم داده‌اند تا ما را گمراه کنند و ما به هر یک از آنها کافری. قل من عند الله اتبعوه ان كنتم صادقين دگوگر را اسمی کو گید کتاب هدایت بخش تر از این ما رسان پیدایی لم يستجيبوا لك تعلم أنما يتبعون وَأَمَنَ الظَّلَمُ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ هرگاه این پیشنهاد ترا را نپذیرند بدان آنها از حوسهای خود پیروی می کنند و آیا گمراهتر از آن کس که پیروی هوای نفس خیش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته است کسی پیدا می شود مثلما خداوند قوم ستم را هدایت نمی کند ما آجات قرآن را یکی بعد دیگری برای آنها آبرتیم شاید متذکر شبه کسانی که قبلا کتاب آسمانی با آنها توتعیم با آن یعنی قرآن ایمان می و ایزا یکلا علیه این خالو آمننا بی اینه الحق من ربنا اینه کننا من قبلی مسلمی هنگامی که بر آنها خانده می شود می گویند به آن ایمان آوردیم اینها همه حق است به از سوی پروردگار ماست ما قبل از این هم مسلمان بودیم. آنها کسانی هستند که اجر و پاداششان با خاطر شکیباگیشان دو بار دریافت می‌دارند. آنها با وسیلینی که با را دفع میکنند، و آنچه با آنان دو زیداد این انفاه من اعرضوا لنا اعمالنا ولكم هرگاه سخن لغو و بیهودهی بشنوند از آن روی می‌گسانند و می‌گویند اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان سلام بر شما مرطادب جاهلان نیستی انک لا تهدی من احببت ولکن الله يهدي من يشان. وقو واعلموا بالمبتدین تنمی تبون را که دوست داری هدایت کنید ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت میکند و او از هدایت یافتگان آگاه است وقالوا ان نتبع الهدى من أرضنا اولا نمتل لهم حرما آمنا یجبا ایلنی دماغات کل شیئی رزقم من, من لبن تا ولیکن لا يعلمون. انها کفتان ما اگر هدو جسرا هم راستو پذیراو شبیم ما را اثر سرزمین من می رو او ما حرم امنی در اختیار آنها قرار ندادیم که سمرات هر چیزی به سوی آن آورده می شود ولی اکثر آنها نمی دانند و کم اهلتنا من قریت بغرت معیشتها فتلك مساکنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا و از نحن وارثین شهرها به آبادی هایی که بر اثر فزونی نعمت مست و مغرور شده بود هلاک کردیم. این خانهازی آنهاست که ویران شده و بعد از آنها جز اندکی کسی در آن سکونت نکرد و ما وارث آنان بودیم وما کن ربک محلک القرآن حتی يبعث في امها رسولا يدلو عليهم آیاتنا وما کننا محلک القرآن الا وأهلها و اهلها ظالمون پربرکارتو هرگز شهرها با آبادیها را حلاف نمیکن تا اینکه در قانون آنها بیانبری مبعوث کند که آجات ما را برآنان بخاند و ما هرگز آبادیهای را حلاک نکردیم مگر آنکه اهلش تاویم دادند وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات دنیا وزینتها نمای و, و آنچه به شما داده شدم مطوی زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایگدادتر است آجا اندیشان نمیکنید أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْهِ كَمَنْ مَسْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُصْدَرِينَ او يا كسي كي وعد يينيك دازئين با بان خواهد رسيد هماننده كسيست كمتاوية زندگي الدنيا با او سپس روز قیامت برای حساب و جزا احضار می شود. و روزی را به خاطر بیاورید که خداوند آنها را ندا دهد و می‌گوید کجا هستند شریکانی که برای من قال الذين حسّق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أغوَيْنَا كما غوينا ترّضنا إليك ما كانوا إيانا از معبودان که فرمان عذاب در باره آنها مسلم شده می گوگند ما این آبدان را گمراه کردیم آره ما آنها را گمراه کردیم همان گونه که خود گمراه شدیم ما ز آنها بیزاری می جوییم آنها در حقیقت ما را نمی پرستیدند بلکه هوای نفس خیش را پرستش میکردند کردند وقیل ادعوش و استدعوهم فلن يستجيبوا لهم العذاب لو انهم شود شما معبودهایتان را که شریک خدا میپنداشته اید بخوانید تا شما را یاری کنند آنها معبودهایشان را میخوانند ولی جوابی به آنها نمی دخانید. در این نگام عذاب الهی را میبینند و آرزو میکنند ای کاش هدایت یافته تبودند و یوم ماذا بخاطر بیا روزی را که خداوند آنها را ندام میدهد و میگوید به پیانبران چه پاسخی گفتید فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ يَوْمَئِذٍ فهم لَا این هنگام همه ای اخبار آنها پوشیده میماند حتی توانند از جدیگر سؤال بکنند من اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد امید است از رستگاران باشد پر ربک یخرط ما یشاع و یختار ما زان لهم الخیره سبحان الله تعالی عما یشركون با و برگار هر تو هرچه را بخواهد می آفریند و را بخواهد برمی آنها در برابر او اختیاری ندارند منظه است خداوند و برتر است از شریکهایی که برای او قایل می شبند. و يعلم ما و اله الا هم لهم حمد فی الولا والآخرة ولهم حکم و الیه ترجعون تبرگاه تو می داند آنچرا که سینه تنهان می و آنچرا که آشکار می کند او خدایی که معبود جز او نیست ستایش برای اوست در این جهان و در جهان دیگر حاکمیت نیز از آن اوست او و همه شما بسوی او باز می‌گردید. قل ارا اینتم ان جعل الله علیکم واللیل سرمدا الى يوم القيامه من الههم غیر الله یاتیک بضیاء افلا تسمعون بگو به من خبر دهید اگر خداوند شب را برای شما تا روز قیامت جاودان قرار دهد آیا معبودی جز خدا می میتواند روشنایی برای شما بیاورد آیا نمی شنوید قل ا جعل الله و من الله يأتيكم تسكنون افلا من خبر دهید هرگاه خداوند روز را تا قیامت بر شما جابدان کند کدام معبود داید از آدال که شبی برای شما پی تا در آن آرامش شبی. آیا نمی بینید؟ و من رحمتی که برای شما شب و روز خراسان. تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهرگیری از فضل خدا تلاش کنید شاو جد شکس نعمت او را بچه آبرید و الذین کنتم بخاطر خاطر بیاورید روزی را که آنها را ندامی میدهد. ومیگو جد کجا جاند شريکان کبرو جمان من كل امت شهیدا فقلنا ها تو برهانكم, برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون در آن روز از هر امت گواهی برمیگوزینیم و به مشرکان میکن راه میگوییم دلیل خود را بیا برید اما آنها میدانند که حق برای خداست و تمام آنچه را افترا میبستند از نظر آنها گم خواهد شد این قارون کان من قوم موسی وأَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُرُونِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَتَنُوُّ بِالْعُصْبَةِ لِلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحَينَ قارون أَسْقَوْمٌ مُصَابُودٌ أَمَّا بَعْضَ النَّخَالِ تَمْكَارٌ مَا أَنْقَادَ أَذْكَانَ شَابٍ که حمل صندوق هاج آن برای یک گروهی زورمند مشکل بود به خاطر هنگامی را که قومش به او گفتند این همه شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنند دکان مغرور را دوست نمی ولا لا تنس نصیبك من الدنیا و احسن احسن الله إليك و لا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بعد در خدا به تو آخرت را جست جو کن به را از دنیا فراموش به همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است نیکی کن و هرگز فساد در زمین من و ما که خدا مبصدان را دوست نداوند قال انما اوتیتو علی علمین عنذی اولم من انده لما من من, من و جمع و قارون گفت این ثروت را با وسیله دانش که نزد من است به دست آورده آیا او, او نمی‌داند خداوند اقوامی را قبل از او هلاك کرد که او نیرو و سربتمنتر بودند و هنگامی که اصابه علاقی فرار صد مجرمان از کناه ها نشان سآل نمی شدند فخرج علی قومهی فی زینته قال الذين يريدون الحیات دنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قرون اینه لگو حظ عظیم قارون با تمام زینت خود در برابر قومش داخل شد آنها که طالب حیات دنیا بودند گفتند ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیست آشده برای که او بحره عظیمی تارند وقال الذین اوتو العلم وی ثواب الله لمن صالحا کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند وای با شما ثواب ادافی بهتر است برای کسانی که ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام میدهند اما جز صابران آن را دریافت نمی کنند فما کان له من فئة ينصر له من دون الله وما کان من المنتصرین سپس ما او به خانه اشرا در زمین فرو و گروه نداشت که او را در برابر عصاب علاقی یاری کنند و خود نیز نمیتوانست خیشتن را یاری دهد فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَزَنَّمُوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ دِثْقًا لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ لَا مَنَّ عَلَيْنَا بِنَا و آنها که دیروز آرزو می میکردند به جای او باشند هنگامی که این صحنه را دیدند گفتند وای بر ما گوی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش میدهد یا تنگ میگیرد اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را نیز به قعر زمین سرو میبرد ای وای بوی کافران هرگز رستگار نمیشوند دل قد دعو الاخره نجعلها للذین لا يريدون کسانی قرار میدهیم که اراده برتری تویی در زمین و فساد ندارند وحق بطنية براوجه پرهیز قارونا من جاء بالحسنت فلهو خير منها ومن جاء بالسیعیت فلا يجز الذین عملوا السیعیات إلا ما كانوا يعملون کسی که کار نیکی انجام دهد ده برای او پاداشی بهترزان است و با کسانی که کار بدی انجام دهند ده مجازات جز اعمالشان دادن نمی شود اینالذی فرض علیک القرآن لغاد معاد. قل ربنی اعلم من جاء و من هو فی لنآن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت باز میگرداند بگو پروردگار من از همه بهتر می داند چه کسی هدایت آورده و چه کسی در دلال مبین تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا ولی رحمت پروردگارد چونین ایجاد کرد اکنون که چونین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن و لا یصد عن آیات الله بعد از انزلت الیک و دعو الى ربك ولا لا من المشرقی هرگز سراز آجات خداوند بعد از آن که شد باز ندارند بسوی پربار قدر تعبت کن و از مشکل نباش. ولا تدعو مع الله إلى آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجع. و دیگری را با خدا مخن که هیچ معبدی جزو آنی همه چیز جز پاک او فانی می شود حاکمیت از آن اوست و همه به سوی او باس می